سپاس که با ما همراه هستید. فرشیر نسراللهی هستم و خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سمت شما میرسوند. با ما همراه باشید. درخواست برای کاهش مالیات شرکت ها. کنفدراسیون دانمارک اعلام کرد که دانمارک باید به پیروی پی از همسایه شمالی خود سوئد قدم بردارد. دولت سوئد پیشنهاد کاهش نرخ مالیات شرکت ها از 22 درصد به 20 درصد را ارائه داده. موابن کنفدراسیون سنایه دانمارک گفت دانمارک نمیتواند نرخ مالیاتی غیر رقابتی تر نسبت به همسایگان خود داشته باشد چون که بر سرمایه گذاری در این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت طبق آمار درآمد حاصل از مالیات شرکت ها و مالیات بر درآمد در سال 2016 به ترتیب مبلغ, مبلغ بالغ بر 165 میلیارد کرون در سالهای اخیر بوده است همچنین در سالهای اخیر تلاش برای کاهش مالیات شرکت ها افزایش یافته. به طوری که بریتانیا قصد دارد این نرخ را تا سال 2020 به 17% در ساعت تقلیل دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از کاهش قابل ملاحظه در این زمین صحبت به میان آورد. خانواده در جنوب دانمارک از یک ماه پیش پرچم آمریکا را در حیات خود برفراشدند اما ساعت 7 و 15 دقیقه روز دوشنبه آنها با یک مهمانه سرزده مواجه شدند و آن هم کسی نبود جز پلیس پلیس محل مراجع مجری قانون به دنبال دریافت چندین اعتراض از مردم صورت گرفته یکی از این معترضین یک خانم دانمارکی بود که برای رسیدن به محل کار خود هر روز از جلو این خانه عبور می کرده. و برافراشتن پرچم یک کشور خارجی را به پلیس گزارش کرد طبق یک ماده قانونی که در سال 1915 به تصویب رسید برافراشتن پرچم هر کشوری به جز دانمارک بدون اخذ مجوز قانونی غیرقانونی به شمار میرود به این خانواده دستور داده شده که پرچم آمریکا را پایین بیاورند در غیر این صورت با جریمه 2500 کرونی مواجه می شوند. در افسانه های دانمارکی آمده که پرچم دانمارک معروف به دن در سال 2019 در یک نبرد در استونی از آسمان نزول کرد. ها پرچم خود را سمبول وطنپرستی می دانند و در مراسم مختلف از جمله در جشن تولدها، فارغ تحصیلی و کریسمس از پرچم خود استفاده می کنند. پیشنهاد جدید به افراد موسن برای ادامه کار دولت و حزب مردم دانمارک درباره ارائه انگیزه به افراد مسن در شرف بازنشستگی برای ادامه حضور در بازار کار به توافق رسیدند طبق مقررات جدید که از اول ژوئیه سال 2018 به اجرا گذاشته شود اگر فردی مدت بازنشستگی خود را به مدت 4 سال به تعویق بیاندازد یک اضافه پرداخت به مبلغ 295700 به علاوه برای ده سال دریافت خواهد کرد اگر فردی دو سال پس از موعد بازنشستگی کار کند از اضافه پرداخت 147.800 کرونی برمت خواهد شد بودجه این پرداختها از کاهش 3 درصدی از مزایای مهاجران و پناهجویان تمی خواهد شد این اقدام دولت به شدت مورد انتقاد جنای چپ قرار گرفته رتبه اول دانمارک در کیفیت زندگی در آخرین رتبه بندی که زندگی تحت عنوان شاخص پیشرفت اجتماعی دانمارک در رتبه اول جهان قرار گرفت آزادی بیان، آزادی تجمع، حقوق سیاسی، حق مالیکیت خصوصی، سطح اشتراک تلفن همراه و استفاده کنندگان اینترنت 96 درصد در رتبه بندی مؤثر محسن بود در این رتبه بندی فعلان در جایگاه دوم، ایسلند و نروش به صورت مشترک در رتبه سوم و سوئد در رتبه قرار دارد. بخلافت حزب مردم دانمارک با اصل آزادی نیروی کار دو حزب سوشال دموکرات و مردم دانمارک از دولت خواستند یک سیاست جدید در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ نماید کریستیان تولسن دیل رئیس حزب مردم دانمارک با حمایت رئیس حزب سوشال دموکرات اعلام کردند که اصل آزادی نیروی کار در محدوده کشورهای اتحادیه اروپا دیگر قابل استمرار نیست. افزایش نابرابری جنسیتی در دانمارک دانمارک به طور سنتی یکی از کشورهای پیشرو در امور حقوق زنان و برابری جنسیتی بود اما در حال حاضر رتبه این کشور خیلی پایین تر از همسایگان خود سوئد، نروژ و ایسلند و فلان می باشند ماریال لیسبرگ از محسسی حقوق بشر دانمارک گفت دانمارک در این زمینه عقب افتاده چون که دیگر نگران برابری جنسیتی نیست انتقاد از دولت دانمارک به خاطر فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به مردم سوسیالیست از تصمیم دولت در فروش تجهیزات نظارت بر... به عربستان و سایر کشورهای سرگوبگر خلیج فارس به شدت انتقاد کرد. نیلسن سخنگوی سیاست خارجی این اقدام دانمارک در ادامه معامله با این کشورها که مرتب حقوق بشر را نقض میکنن را زیر سوال برد وی گفت ما ممکن است با برخی کشورهای که دموکراتیک نیست رابطه داشته باشیم اما عربستان سعودی یکی از بدترین کشورهایی روی کره زمینی زمین است ما باید نزدیکی روابط با این کشور را مورد بررسی قرار دهیم استقرار نیروهای نظامی در خیابانها دولت دانمارک برنامه استقرار نیروهای نظامی برای گشت در خیابانها در صورت وقوع یک حمله تروریستی را در درس بررسی دارد به نوشته روزنامه بالسیکه دولت از یک استاد حقوق خواسته توجیه حقوقی برای انجام چنین اقدامی را ارائه دهد وزیر دارگستری در ایمیلی نوشت ما لایحهای را آماده می‌کنیم که طی آن پلیس بتواند از نیروهای نظامی در گشت خیابانی کمک بگیرد از حمله تروریستی دو سال نیم پیش در کوپنهاگ پلیس حدود هزار ساعت به مراقبت 24 ساعته کنیسه یهودیان مدرسه یه کارالین یهودی و سایر اهداف مهم در کوپنهاگ اختصاص داده. اعزام نیروی بیشتر از دانمارک به افغانستان دولت دانمارک در تلاش است یک اکثریت پارلمانی برای اعزام تعداد بیشتری نیروی نظامی به افغانستان ایجاد کند. وزیر دفاع گفت وی منتظر درخواست رسمی از آمریکا میباشد وی همچنین افسود که هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده و مذاکره با احزاب ادامه دارد در حال حاضر تعداد 97 نیروی نظامی دانمارک به عنوان بخشی از نیروهای ناتو برای آموزش نیروهای امنیتی محلی در کاپول مستقر هستند اما دولت در نظر دارد تطبیق قولی که به وزیر دفاع آمریکا در سفر خود به کپنهاگ داده این تعداد را به طور قابل ای افزایش داد. دانمارک گرانترین کشور برای مصرف کنندگان. در آخرین بررسی کشورهای اروپا، دانمارک دوباره گرانترین کشور اتحادیه اروپا شناخته شد. قیمت کالا و خدمات در دانمارک به طور میانگین 39 درصد بالاتر از میانگین اروپا است. در حالی که در بلغارستان این رقم 52 درصد پایین تر از میانگین اروپا در تحقیق شامل سی و هفت کشور اروپا از جمله اعضای اتحادیه اروپا ایسلند، نروژ، سوئیس، مونتهنگرو، مقدونی آلبانی، سربستان، ترکیه و بوسنی بود است. فرود اسراری هواپیمای مسافربری دانمارک، یک فروند هواپیمای هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایس‌آی‌اس به دلیل وجود دود در کابین ناگزیر به فرود اسراری در لهستان شد. روز سه شنبه با اندکی پس از برخواستن این هواپیما مجبور به نشستن شده است. این هواپیما از نوع ارباس 319 با 88 مسافر و 5 خدمه از گدانسک در لحستان آزبه کبهناگ دانمارک بود. این گزارش پس از فرود استرالی تمام مسافران و خدمه بدون آسیب دیدن از هواپیما تقلی شدند. خطوط هوایی اسایست توضیح نداد که علت وجود دود در این هواپیما ما چه بود است زلزله چار ریشتری در مرکز جزیره گرالند دانمارک را لرزاند یک زمین لرزه پیاپی صبح روز شنبه مرکز گرالند را لرزاند شدت این زمین لرزه ها چهار در مقیاس ریشتر گذارش شده گذارش از وقعی پس لرزه های خفیف در این منطقه حقایت دارد اطلاعی در مورد خسارات و تلفات احتمالی گزارش نشد اما گفته می‌شود خانه‌های اطراف ساحل تخلیه شده. و آخرین خبر از ملکه دانمارک، ملکه دانمارک می‌گوید افزایش سن نشان از پربار شدن کوله باره تجربه می‌باشد. ملکه دانمارک با وجود اینکه 77 سال سن دارد، کماکان بر رأس قدرت قرار دارد او در کنفرانس ها یه خبری متعدد به خبرنگاران گفته به وظیفه ملی خود در قبال کشور تا آخرین نفر خواهد پرداخت. وی از تاریخ 14 ژووی 1972 بر تخت پادشاهی نشست و بیش از چهل سال است که کشور دارو... کشور را اداره می وی گفته گفته سن نشان از پربار شدن کولهبار کول تجربه می باشند. تندرستیتون پایدار باشه